بسم الله الرحمن الرحیم آم ما گفتیم الان رسیدیم به خاص و الخاصو یقابلو خاص در مقابل عام قرار میگیره و تخصیص تخصیص چی هست؟ تمییز و بعض الجمله جدا کردن بعضی از آم جدا کردن قسمتی از عام بهش میگن تخصیص موقع که ما میگیم تمام طلاب بلند چند جز زید ما اینجا زید و خاص کردیم از بقیه طلاب پس تخصیص جدا کردن قسمتی از آم خارج کردن قسمتی از آم وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل وعام تقسيم مش بردنه متصل وعام نه خاص كننده وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل وو تقسيم مشهد به متصل ومنفصل به متصل ومنفصل اين هو بار مگرده به ببینید تخصیص مصدره اسم فاعلش میشه مخصص یعنی خاص کننده اسم مفعولش میشه مخصص یعنی خاص شونده ما عام داریم تمام طلاب بلند شد این شد آم جز زیت این جز که استثناء هست خاص کرد همین آمی که خاص شده بهش میگن مخصص یعنی خاص شده در این خاص اومده ولی اگر در عام خاص نیاد دیگه بش نمیگن مخصص و هو و او یعن قسم تقسیم میشه به متصل و منفصل یعنی مخصص خاص کننده تقسیم میشه بر دونو یعنی ما دو نوعه خاص کننده داریم متصل اونی که به عام چسبیده و منفصل اونی که جدا هست در نسی دیگر جدا گونه اومده است. پس متصل اونیک هست که مستقل نیست از لفظ عام، از نس عام و منفصل آن هست که نسش جدا هست در نس دیگه اومده مثالی میزنیم کل عمل ابن آدم له الا الصوم این متصله چون اینجا خاص متصل به نس اومد اما یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الأنثین الله شما رو در تان چنین وصیت میکند که هر مرد را دو سهم یک زن ارث دهید ولی این خاص این عام خاص شده ولی با مخصصی که منفصله در خودش ذکر نشده جای دیگه ذکر شده اصلا در حدیث ذکر شده لا يرث المسلم الكافر مسلمان از کافر ارث نمیبره پس اینجا خاص شد یعنی اگر اون زکر مثلا خدا نکرده کافر بود ارث نمیبره خاص شد این عامه خاص شد پس دو تا, دو تا نوع خاص کننده یا مخصص داریم متصل و منفصل خودش میگه که متصل بر چند نوع است فل متصل و الاستثناؤ. یک استثناء که مثال شد زدیم و شرط خودش دوباره اینا رو مفصل میارد دیگه مثال رو اینجا نمیاریم و تقید به صفح یا قید کردن با صفت که بحث مطلق و مقید هم مطرح میشه جلوتر حالا مخصصای متصل و ابتدا می والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الکلام استثناء چه هست؟ خارج کردن اخراج کردن ما لولا آنچه که اگر این اخراج کردن نمی بود لدخل فی الكلام اونی که خارج شده داخل کلام می بود مثال بلند شدن طلاب جز زید اگر این جز نبود زید هم داخل کلام بود ولی با این زائد خارج شد پس اخراجو خارج کردن مال الله اگر چنانچه او موجود نبی بود اون استثناء لا دخل فی اون مستثنا وارد کلام می بود جزء مستثنا منه می بود و انما یصح بشرطی ان یبقى من المستثنا منه شیء ببینید شرایط استثناء رو اینجا ذکر می‌کنه شرط اول استثناء اینه که از مستثنا چیزی باقی بمانه مثلا میگیم بردار ده کتاب رو جز چارتا تا 6 تا دیگه باقی میمونه اما اگر بگیم بردار ده کتاب جز دهتا تا اینجا چیزی باقی نمیمونه پس یکی از شرطش چیه است انیکونا و انما به شرط ان يبقى من المستثنى منه منه شیئون از مستثنا منه چیزی باقی مونه خب مست اومدند طلاب جز زید طلاب میشه مستثنا منه زید میشه مستثنا الا میشه عدات استثناء این اصطلاحات هم در ذهن باشن شرط دوم ویجوه ومن شرطه ومن شرط ديگر استثناء استثناء أن يكون متصلا بالكلام متصل بكلام باشه شرط ديگر استثناء اين كمتصلا بالكلام باشه يعني, يعني فاصله بين فاصله در وسط شخص مثلا نياد ميگه اين كتابها مال شما. بعد از دو روز میاد جز دو تا میگه اینجوری نباشه متصل باشه متصل به کلام باشه یا حقیقتا ماننده ده تا کتاب مال شما جز جغرافی یا حکمن طرف میگه ده تا کتاب مال شما بعدا یه عدسه میزنه یا یه ضرورتی پیش میاد فوری بعدش میگه جز این که این هم حکمن متصل هست و یا جوز تقدیم ال... البته بعضی از اصولیون میگند اگر چنانچه فاصله هم باشه مشکلی ندارد و یا جوز تقدیم الاستثنائی علا در زبان عرب جایز میگه مقدم کردن استثناء برمستثنامین باله جایز است مقدم کردن استثناء بر مستثنا یعنی اول مستثنا بیاد بعدش مستثنا منه ذکر بشه و یجوز الاستثناء من الجنس و من غیرهی مسئله دیگه ای که ذکر میکند میفرماید و جائز است استثناء از جنس و از غیر جنس حالا این چه هست؟ ما در کتب نحوی داریم استثناء منقطع یعنی زمانی که مستثنا از جنس مستثن منه نباشه مانند این دییم که القوم حمارا خب اینجا حمار از اس جنس قوم نیست به القوم الا زید که زید جنس قومه جنس مانند جا القوم الا حمارا تا البته اختلافاتی دارن که گروهی میگوین جایز نیست اولی آن است که جایز است پس استثناء خاص کننده ها متصل یکیشون استثناء بود که بحث استثناء رو خوندیم دومی و شرط شرط هست دومی هست شرط هست يجوز این يتأخر عن المشروط جائز است که بعد از مشروط بیاید منظور لفظا عملا نه لفظا در جمله ويجوز ان يتقدم على المشروط وجائز است که قبل از مشروط بیاید پس مخصص شرط جائز است که بعد از مشروط بیاید یعنی اول شرطه رو بگی جائز است که بعد از مشروط بیاد و جائز است که قبلش بیاید یعنی شرط جائز است بعد از مشروط بیاد و جائز است قبلش بعد از مشروط مانند این مثال و نصف ما ترك ازواجو کن برای شماست نصف آنچه که همسرانتان به ترکه گذاشته اند اگر آنان فرزندی نداشتند شرط بعد از مشروط اومد اینجا میتونه قبلش بیاد و یجوز ان یتقدمه على المشروط و جائزه قبل از مشروط بیات و ان کن اولات حملین فانفقو علیهن حتی یضعن حملهن اگر اون زنان صاحب حامل بودند پس برانن انفاق کنید تا وضع حمل کنند این شرطه رو اول آورد مشروطه رو بعدش ولی این در لفظ هست در عمل دیگه چونی چیزی نمیتونه باشه پس تا اینجا کار ما رسیدیم به انواع مخصصها رو نام بردیم یعنی استثنار رو نام بردیم شرط رو نام بردیم الان میرسیم به بعدیش به صفت والمقید به صفتی اونی که مقید به صفت هست مطلقی که براش صفت اومده یحملو علیه المطلق حملی بشه برون مطلق که رقبتی قیدت بالایمان فی بعض المواضعی ماننده رقبه برده که مقید شده در بعضی جاها با ایمان برده مؤمن و اطلقت فی بعض المواده و در بعضی جاها مطلق اومده شما برده آزاد کنید در بعضی جاها اومده برده مؤمن آزاد کنید فیحمل المطلق علالمقید حمل میشه مطلق بر مقید مطلق اونی که قید نداشته باشه یا که در جنس شایه باشه بدون قید ولی مقید که قید داشته باشه مطلق بدون قید مثالی که در قرآن میارن و امهات و و حرام هست بر شما مادران زنانتون مطلق گفته دیگه قید نه آورده که شما دخول انجام داده باشید یا انجام نداده باشید ولی بعضی جا قید اومده فمن لم یجد فصیام و شهرینی متطابعین هر کسی نیفت دو ماه روزه بگیره دو ماه پدرپ. ولی قیدش اینه که من قبل این یتماس قبل از نزدیکی الفاظ دیگه ای داریم که بعضی جاها مطلقند و بعضی جاها مقیدند مثل رقبه که کتاب تو مثال آورده بود مثلا در کفاره سوگند در قرآن اومده است فتحریر الرقبه المؤمنه اینجا برای رقبه قید اومده قید مؤمنه قید صفت ایمان ولی در زهار نیومده فتحریر الرقبه من قبل ان یتماس به جایی اومده فتحریر رقبه المؤمنه بلکه اومده فتحریر رقبت خوب اینجا داستان چی میشه؟ آیا مطلق حمله بر مقید میشه یا نه؟ میگن اگر حکم یکی باشه و سبب فرق بکنه حکمی باشه آزاد کردن برده و تحریر رقابتن و سبب فرق بکنه اختلاف وجود داره بعضی میگن که در همچنین حالتی مطلق بر مقید حمل میشه یعنی اونجا که مطلق اومده و تحریر رقابتن اونی که مقید اومده این مطلقه رو هم با قید همون مقید مقیدش میکنیم و گروهی دیگر از فقها میگن نه گروه دیگر از فقها میگوین نه زمانی که سبب فرق داشت مطلق حمله بر مقید نمیشه یعنی ما برای قتل عمد باید برده که آزادش میکنیم مؤمن باشه اما برای زهار کفاره زهار مؤمن نباشه ما اینو حمله بر اون نمیکنیم. پس تا اینجای کار ما سه تا مخصص خاص کننده داشتیم از نوع متصل البته استثناء شرط و صفت که البته بحث مطلق و مقید و هم توضیح داد که جلوتر دیگه اینو توضیح نمیده از اینجا به بعد بحث مخصص منفصل و توزیح می و ویجوز تخصیص کتاب بالکتاب و است خاص کردن کتاب با کتاب یعنی آیه به آیه قرآن با قرآن و تخصیص کتاب بسنتی و خاص کردن کتاب بوسیله حدیث و تخصیص صنطی بالکتاب و خاص کردن حدیث بوسیله قرآن و تخصیص سنتی بسنتی و خاص کردن حدیث با حدیث وتخسيس النطق بالقياس وخاص كردنى قرآن وحديث باقياس وتخسيس النطق بالقياس وخاص كردنى قرآن وحديث باقياس نطق منزولش ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول منزول ما أز نطق قول الله تعالى وقول رسول حس مخصص مخصص منفصلهم در کتب سه نورو ذکر میکنند همانطور که اصولیون آورده اند در اصول من علم الاصول و است و در شروع ورقات حس بعضی عمومات و حس خاص میکنه تو دم رو کلش این بعمری ربها بعدی که هر چیز رو نابود میکنه خب کوها آسمانه و زمین خاص شدن اینجا ولی چی چیزی اینا رو خواست کرد حس یا عقل الله خالق و کلشه الله خالق هر چیزی هست شامل خود الله میشه عقل میگه که اینجا عقل نسو خاص میکنه و البته این نوع الفاظ بحثک های دیگه هم روشون هست و سه شرع که منظور از بحث ما اینجا همین نوع سومش هست شرعیش مصنف که گفت خواست کردن کتاب با کتاب کتاب با سنت منظور از نوع شرعیش هست بله خاص کردن کتاب با کتاب خواست کردن کتاب با قرآن با قرآن قرآن با حدیث قرآن با قیاس اجماع رو نیاورد به خاطر این که موقعی که رخ بده حتما یه دلیلی بوده که اجماع رخ داده آنچه که خاص میکنه اون موقع خود اجماع نیست بلکه دلیلش هست اجماع که رخ بده دلالت بر اینه که دلیلی در اون مورد وجود داره علامت بر همینه بخاطر این اجماع رو نگفته بود البته قیاس آورده ولی قیاس رو هم ما میتونیم از همین زاویه میگفتیم نیاره یعنی میگیم چون قیاس هم دلیلی داشته باشه تا ازش قیاسی بگیرن خلاصه کلام اجما رو نه با توجه به که دادیم حالا مثال میاریم والمطلقات یتربسن بانفسهن ثلاثه قرو طلاق داده شده ها برای ایده‌شون سقر قور خب این عام شامل اون زنی میشه که شوهر باش نزدیکی کرده یا نزدیکی نکرده ولی ما آیه دیگیری داریم که اینو ای میاد خاص میکنه اینو میگن خاص قران با قران یا ای الذین عملو اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عده تعتدونها در این آیه گفته اگر نزیکی رخ نداده جمای رخ نداده عده ای ندارند زنان پس اینجا اون زنی که دخول انجام نگرفته از اون ای که عام بود خاص شد این مثال هست. خاص قرآن با قرآن خاص قرآن با حدیث در قرآن اومده که یک سری زنایی برای شما حرامند ولی امه و خاله رو در آیه نه بعد در آخر آیه گفته بغیر از اینایی که نام برده شدن تمام زنان بر شما حلالند خب امه و خاله رو تو قرآن ذکر نکرده و آخرش گفته تمام زنان برای شما حلالا چیش این شد؟ عام ولی در حدیث داریم، اومده که شما زمانی که زن دارید نمیتونید خاله و امهش رو باش ازدواج کنید پس این حدیث اومد عام قرآن رو چکار کرد؟ خاص کرد و این مثال خاص کتاب با حدیث بود همچنین با اجماع البته شیخ در کتابش میگه مثال درستی در این مورد وجود ندارد ما هم مثال نمی آوریم و همچنین برای قیاس مثال نمیآوریم، آوریم اما مخصص های سنت, سنت سنت یا با قرآن خاص میشه یا با سنت خاص میشه یا با قیاس همانطور که در متن گفته بود خاص کردن حدیث با آیه مانند در حدیث در است عمر تو ان قاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله امر شدم بجنگم با مردم تا زمانی که بگن لا اله الا الله خب این عمومه ولی آیه اومده و میگه حتی يقتل جزيه تا زمانی که جزیه بدن یعنی اگر جزیه دادند اون موقع خاصند که البته این بحث های دیگه هم روی الفلام انناس میشه کرد و بحث های علمیه دیگر ولی ما مثال اصولیین رو ذکر کردیم خاص کردن سنت با سنت در سنت اومد است دران چه که با آب باران آبیاری بشوند از کشاورزی یک دهم را زکات بدهید این عامه ولی جای دیگه اومده است که در کمتر از پنج وزق صدقی زکاتی نیست پس اینو خاصش کرد و خاص کردن سنت با قیاس که مراجعه شود به کتب مفصل اصول خاص و آن مهم این بود که با این مثالها آموخته شد موفق و پیروز باشید